روز به خیل ارزو کنیم انشالله که از نعمت و صحت و سلامت به طور کامل برفردار باشید و انشالله که از هر گونه گزند و بلایی هم به دور ما بحثمون رو در ایجاز اتناب و مساوات شروع کردیم مساواد و ایجاز رو برای شما کامل بیان کردیم و گفتیم که ایجاز به دو گونه ایجاز قصر و ایجاز حذف تقسیم میشه و نمونه های داخل کتاب رو هم برای شما بیان کردم. حالا نموزج رو میخونیم خونیم بعد انشاءالله وارد بحث اتناب خواهیم شد. نموزجان لبیان نوع ایجاز به لعبارات برای بیان نوع اجازه در عبارات زیر شما نمونه هایی رو دارید می بینید تعیین کنید یک قاله تاادم اولائک لهم الامن اولائک اسم اشاره است مبتدا لهم خبر مقدم علی امن ما مؤخر این جمله خبر اولائک آنها برای ایشان هر گونه امنیتی است فقط برای ایشان له مقدم شده بر علعم مفید هست یعنی فقط برای اینهایی که گفتیم علعم الفلام داره یعنی هر گونه امنیتی دور شد امنیت غذایی امنیت شؤونه امنیت فکری امنیت نسبت به آینده امنیت در ارزابه رو هر گونه امنیت اولایی که لغمول امنیانه یعنی علفلام علفلام جنس خب این کلام چیزی ازش هزف نشده اما اگر شما بخواهید معنا کنید خیلی انواع امنیت ها رو شامل میشه و فقط هم برای این ها هست پس درش ایجاز قصر نگاه کنید سل آیت ایجاز و غسر لعن نکلمت عل امن یدخل و تحتها کل عمر محبوب چرا کل عمر محبوب هر گونه امنیتی که محبوب و دوست است برای ما علف نام علف نام فقط این تفابه ها پس است با این آیه ان یخاف فقر امیت از فقر دارن او موتن. ترس از مرگ دیگه ندارن امنیت از مرگ جورن ظلم دیگه به آنها نمیشه امنیت از ظلم زوان نعمتن اینکه نعمتی که دارن ترس داشته باشند بریزه او غیر از من اصناف مکال دیر این از انواع سختی ها اگر شما داشته باشید درست شد اینها از او امنیت دارن همه رو شامل. اگه بخواد بنویسی خیلی چیز آخر شد پس اجازه به سر دومی رو با. و قالت حالا تلاهه تفته و تذکر و يوسفه. این رو خانواده یعقوب به یعقوب گفتند وقتی که دیدند او خیلی بعد از سالیان سال بازم یوسف یوسف میکنه گفتن الله تلاه قسم توعم با تعجب یعنی عجب به خدا قسم الله این تفته و تذکر و یوسف جواب قسمه خب این تلاه تفته و تذکر و یوسفت تذکر و یوسفت و زمین انتا و یوسف مفعول این جمله خبر تفتا است تفتعو از افعال ناقص است و شما میدونید که افعال ناقصه تاشون هستن با نفی میاد و معناش پیوسته است نفی در نفی میشه اثبات یکی چیه؟ من فکر ما انفک ما فتح همین ماضیه ما زاله و ما بره ما بره ما زاله من ما فتحه. این تفته و یا انت انته توش مستطره اسمشه خب این از اون فعل که حتما با حرف نرفی میاد پس این بوده لا تفته حرف لا درست شد دلیلش یک اینه که تفتعو از افعال ناقصه است که همیشه توعمه با نفیه میگذرد پس اینجا هم لا بوده حذف شد دا دو دلیل دوم تفتعو نمیتونه جواب قسم تلاهه باشه اگه تلاهه جواب قسمش تفتعو بود حتما حتما باید با لام و نون تحکید میاند درست شد؟ مثل تلاهه تو قرآن تلاهه لعکیدن از نامکم ابراهیم میده تلاهه لعکیدن از نام به خدا قسم یه فکر و چاری برای این بطاعتون میکنم در شد تلاهه لعکیدن از نامکم اینجا باید میشد لطفتن نه چون فعل مزاره مثبت نمیتونه جواب قسم باشه مگر اینکه لامونونه و داشت تاکید داشتوش اینکه نداره معلوم چه لا داشت این دو دلیل یک فعل ناقص است و این فعل ناقص با حرف نفی می آید دو این و قادریت به اینکه جواب قسم باشد رو ندارد چرا چون فعل مضارع مثبت جواب قسم اگر بشود باید لامونونه و داشت تاکید اینکه نداره معلوم چه حرف نفی داشت میگه فیل آیت ایجاز حصفه لنن معنا تلاه لا قفته و تذکر یوسف و گفتن به خدا قسم تو پیوسته یوسف یوسف میکنی ذکر یوسف میکنی عجیبه تو بازم داری پیوسته یوسف یوسف میکنی این همه سال فراموش نکرده فوز فحرف و نفیه مالی سه و قالت آلام اخرج منها ماءها و ها اخرج منها ماها ما و مرعاها میگه خدا خارج کرد از این زمین برای شما آب این زمین رو و چراگاه این زمین رو مرا ببینید اینکه از دل زمین برای شما آب درآورد. و سبزیجات مرآه ها خب این شامل خیلی چیزها میشه یعنی خدا اسباب حیات شما رو درست شد از این زمین دره بوده. درست اون چه که از زمین میرویه میتونه خوراک حیوانات بشه درخت باشه میوه بده میتونه برای سوخت و ساز به کار بره میتونه بگید برای حیوانات ما خوراک بشه اون حیوانات برای ما غذا بشن و لباس بشن و خاصیت های متعدد یعنی خدا از دل این زمین برای شما اسباب زندگیتون رو درمون. با دو کلمه ما و مراآ ها یعنی تمام نعماتی که وابسته به زمین هستش از، کشاورزی و دامپروری و خوراک ما نسبت به اونها و نوشیدن ما نسبت به آب همه را بیان کرد اجازه قصر داره نگاه کنید میگه فی الایته اجازه قصرن فقط دلل الله سبحانه و به کلمت این خدا دلالت کرده با دوتا کلمه الا جمیع ما اخرجهم من الارض بر همه آنچه که از زمین برای ما بیرون آورده قوتن و متاعن چه خوراک خودمون باشه چه کالاهایی که استفاده می آ از چوچه استفاده های میکنیم، متقوتن و متاعن لنناس بعد بیان میکنه منر عشک، این قوت و متاع منر اشبه نیا اولوفه ها و شجره درخت به دیزم و لباس پوشش ما و نار آتش که ما ایجاد میکنیم و ما آبی که میخوریم حتی گوشت حیوانات که مصرف میکنیم مرش شد. پشم اونها که لباس میکنیم بعضی از انواع گیاهان که از اون لباس درست میکنیم مثل پنبه و کتان و اینها اینا همه داخل مآها و مرآها مستتر چهار و قال تعالی خداوند فرموده اما الذین اسودت وجوههم میگه روز قیامت اونهایی که صورتشون سیاهه اما الذین اسودت وجوههم اما در مقابلش جواب میخواد جوابش هم با میاد اون مثل عملیتی ما فلا تقرد. درست شد اینجا الان ما نمیبینیم چیزی که جواب عما باشه با فاومده باشه پس ملوش محصوفه خب حسفا قرینه میخواد قرینش چیه؟ این اکفرتون بعد ایمان کن یه ای همزه همزه انکار توبیخیه یعنی اونا این طور کرده بودن خدا توریسشون میکنه اون ملائکه ای که اینو میگن میگه کسانی که رویشون سیاه هست پس جواب اینو میشه فیوغالو لهم فیوغالو لهم پس به اونها گفته میشه یعنی ملائکه به اونها میگن اکفرتون بعد ایمان کن این اکفرتون بعد ایمان کن یعنی خاک منون سرتون شما کافر شدی بعد از اینکه ایمان داشتی بعد که, که فهمیدید ایمان چیه؟ کافر شدید این اکفردون بعد ایمان کم مرفوع مرفوعه مقوله نایفایله یا یقال همه اون فیوغالله هم جواب هم ماست در واقع خبر الذین هم هست الذین مبتدا اسفتت حجوق هم خبر چیز سله فیوغالله لهم اکفرتم بعد ایمان کم خبره بین اما و فا مبتداش کار کرده فاصله کرد یکی از چیزهایی که فاصله میکنه بین اما و فا مبتداش اما لذین اصودت وجوه هم فیغال لهم پس گفته میشه به اونا اکفرتون بعد ایمان نکن و حصف ماده قول در زبان عربی زیاده حتی ابن مالک میگه ولخوله از مرتو سبیر میگه خیلی جاها شما قول رو تقدیر بگیر به هدف زدید قایده رو رعایت کردی مثل همینجا یعنی در واقع شما وقتی که قول رو حضف کردی و معقولش داره و اشتلالت میکنه انگار ما توی قول سر جای خودش هست فیو قالو لهم اکر بعد ایمان نگاه کنید تل آیت ایجازون قرینش هم یکی اینکه که جوابه اما نیاز داریم به فا پس فیغال و لحوم میخواید قرینه دیگرش این که بعد ایمان کن با این همزه استفانه این کار توبیخی این جمله به نظر داد معقول قوله یعنی معقول قول اومده جای ماده قول رو پر کرد قرینه بر و روست فلعایت ایجاز و حسفن فقط حوز جواب و اما و اصل کلام فیغال و لحوم بعد ایمان کن دیناشو من توضیح نگاه کنید آیه بعد رو. و گالت آن. ولو انا قرآنن سیرت به الجبال او قطع به هر و او کل به الموتا بل لله العمرو جمیع. نگاه کنید. ولو انا قرآنن این بعد از لو ان میخوانند یعنی ولو ثبت ان نه و ثبت نه اون فعل شرط محضوفه. اما اینجا اونو تقلیل نمی... چیز نمیکنن به عنوان اجازه حذف نمیگن. چرا چون اون هیچ وقت ظاهر نمیشه اونو نهات آوردن چون ما نیاز به فعل شرط داریم، میگن اینجا ثبته در تعبدیل. اون از این محضفااتی نیستش که، حذف شده باشد واقعی با نه مثل فهی و اینجا هیچ وقت حالا ولو ثبت گفته نشده این ولو اند قرآنن سویرد به هز جبالو اگر میگه به فرض اگر ثابت بشه که قرآنی که حرکت داده میشه با اون قرآنی هست که حرکت داده میشه با اون کوها اگر معلوم شد قرآنی باید باشه که کوهار تکون بده جا به جا کن او قد تعد به عرض بهی بخوره به قرآن مثل بهی قبل یا او قد تعد یعنی شوق یا تکه تکه بشه با اون العرض و زمین بشه زمین رو بشکار او قد تعد او کل ما بهل موتا یا قرآنی باشه که بشه با اون با مردگان صحبت کرد کل نبی الموت الموتان نائب فاعل کنده موتا جمع میت دیگه اگه قرآنی با این خصوصیات باشه قرآنی با این خصوصیات بود نوع دیگه یعنی به فرض اگر قرآنی قرار بود با این خصوصیات می بود دیگه جواب نمی‌اومد چون بله که بهش میگن بله ازرابی تونقاف بله قرآن المجید بله عجبو من گفتم این بله ازرابیه ما بعدش جمله جداست خب اینجا باید جواب لعما داشت باشیم جواب لعفت جوابش این بوده لکان حازل قرآنه لکان حازل قرآنه لکان قرآن یعنی اگه قرآنی قرار بود ما داشته باشیم که ازش این کارایی ها براید که کوها جا به بشه زمین تکه تکه بشه مردگان به حرف در بیان با آن اون همین قرآن بود همین. شما از ظرفیت اون نمیتونید استفاده کنید همین قرآن بود لکان هازل قرآن. بعد می که که بللله العمرو جمعی اینجا جواب لو افتاد بللله رو جمعی بعضی تو این لکانه هاز القرآنه جواب رو لما آمنو لما آمنو گرفتند لما آمنو چون یه آه آهی دیگه ای داریم فکر می کنم در سوره یاسین مشابه همینه که میگه اگر ما قرآنی بفرستیم که این خصوصیات رو داشته باشه اینا ایمان نمیارد به قرینه اون گفتن لما آمَن و عزوج یعنی اگر قرآنی هم بود که کوه ها رو میشکافت یا از جابجایی که زمین رو میشکافت مرده ها باهاش به حرف در می اومدن بازم اینا ایمان نمیآوردند. آوردن میگفتن سر چار علی حال جواب لما جواب لو از بعد میگه بل لله الامر و این لله خبر مقدم الامر و الفلام داره مبتدای محخر جمیعا هم حال است از برای این الامر این در واقع حال است از اون زمیر ثابتونی که لحو بهش متعلقه که بعد میگه به امر این حال بعد از فایل بیاد زلحانش این در واقع حال بر امر چون اون زمیر به امر یعنی همه امور همه و همه اموری علی علی علی جنسه. همه چی دست خداست یعنی خدا میتواند قرآنی داشته باشه که این خصوصیات رو داشته باشه. همه چی دست خداست هیچی از غیر خدا نیست همه از آن خود خود این لله الهم رو ها که لله خبر مقدم محیده هست الهم رو جنس داره خود این کلام این جمله اجازه قسر داره یعنی این آیه هم توش اجازه حسف جواب لو حسف شده هم اجازه قصر تو بل الله العمر جمع خب این هم مالی این که این که دو همششون نگفته فیلی آیت ایجازون به حسف جواب لو از تقدیر کلام لکان هاز قرآن. او لما آمنو بر تذبیر بعضی دیگر مفسرین درست شد و ایزند دی لله لعمر و جمیعن ایجاز و قسره ایجاز و قسره خب بریم سر کلام بعدی و قال عبود طیب جناب آقای عبود طیب متنبی گفته عبود طیب متنبق میگه ات از زمانه بنوه فی شبیبته فسرهم و ات ایناه علل حرمی ات از زمانه از زمان یعنی این روزگار ات ها یعنی آمدند آمدند خدمت این روزگار بنوه فرزندان این روزگار و نوحو اوحو برمیگرده به زمان این یکی از مواردیه که واجب مفعول و فاعل مقدم بشه چون به فاعل زمیری چسبیده که برمیگرده به مفعول مثل ابتلا ابراهیم رب یعنی در گذشته فرزندان روزگار خدمت روزگار رسیدند فی شبیبتی در جوانی روزگار نه در صورت که روزگار جوان بود یعنی در گذشته اونهایی که بودن تازه متنبی هزار سال پیش میگه ازا خوب سال پیش میگه اون قبلی ها، مردمان آمدن به این دنیا در صورت که دنیا جوان بود خب دنیا مادر این هاستید این ها رو زایید در جوانیش فسر رحو. پس همه اینها رو خوشحال کرد سرمست کرد به وجد آورد آه پس زمان اینها رو مسرور کرد کیفشون رو کوک کرد چرا؟ مثل یه مادر جوان که تو سن جوانی بچه دار شد خب میکنه بچه اول و دومش تو سن جوانی هم بچه دار شده اینا رو خشک میکنه یه ذره گریه کنند، به قول خودمون ست تا براشون بزشک و دکتر و وسائل آزایش رو تهیه میکنه که مواده گریه کنه بهترین تقضیه بهترین پوشاک بهترین چیز باهاشون بازی میکنه مادر جوان بچه داشت میگه روزگارم اونایی که قبل از ما اومدن شون روزگار مادر مردمه اینا هم تو جوانی خدمتش رسیدن تا هم فرزندو شدن همشون خوشحال. اما وعت ایناه و علن حرمی و ما تو دوران پیری این روزگار خدمت روزگار رسیدیم مادر ما شده تو دوران پیری مثل کسی که تو 50 سالگی بچه پونزه همش رو به دنیا آورده او دیگه توی جوب بزرگ میشه و توی کچین چوب و اصلا نمیدونه چی هست و آه که گوش نشه این که این بزرگش میکنه اون یکی یه چیزی بهش میده تو خواصله دیگه نده دوران زندگی انسان رو تقسیم می‌کنن یکیشو میگن جوانی شبیبه این جوانی شبیبه تو عربی شاب بین سن مثلا 20 سالگی تا 40 سالگی رو میگن خب معلومه تو آسی و 3 سالگیش خیلی دیگه جوانی اونم باز جوانی تا 40 سالگی رو جوانی میدونه مثلا از 18 سالگی قبلش که میشه نو جوانی و قبلش هم میشه کودکی درست شو ولی از هیجده سالگی بیست سالگی تا چهل سالگی رو میگن جوانی از چهل سالگی تا شست سالگی رو میگن کهولت میانالی الهولت میانسالی از چهل سالگی تا شست سالگی میشه هولت چیز کهولت میانسالی. از 60 سالگی تقریبا تا 80 سالگی میشه شیخ پیری بعد از اون 80 سالگی به بعدش میگن حرم حرم یعنی کسی که 90 سالش 100 سالش خیلی پیر فردود میگه ما خدمت این روزگار رسیدیم مادر ما شده در دوران خیلی خیلی پیریش یه حوصله نداره اصلا وقتشو نداره اوثلشو نداره توانشو نداره ما هم داریم همی تو این دنیا میچریم با بدبختی یعنی اینطوریه دیگه و اتیناها آتای و علال حرمی فسا انا این فسا انا به غری چی شده ما تو دوران پیریش دسیدیم با ما بدرفتاری میکنیم اونا تو دوران جوانیش دسیدن خوش کنیم تشبورش هنگی هم کرد. ات از زمانه بنوه و فی شبیبته فسره و ات ایناه علال حرمی. یعنی توی پیریش درست شو. یعنی و حرمن در حالی که پیره علال یعنی مع حرمی الفگاه موزد از مجابه مو الان به معنامی یعنی مع حرمی یعنی حرمن حالی از برای ات اون خوب درست شو. افتی شبیبته هی هم حال است از برای زمان یعنی ات از زمانه بلوح و شابن فسره هم و عطیناه و حرمن فسانا ما تو پیرش اومدیم ما رو فلاسو داره چکلقت میسن اصلا فکرش هم دوما نیست و میگه فلبیت ایجازون به حذف جمعه و تغییره و و علل حرمی فسانا درست پس شبیبه بین چهل، كهولت چهل تا چهه کهولت چهه تا شهست شیخوخت شهست تا هشتاد آه. و هشتاد به بالا دیگه میشه حرم حرم یعنی فیلی بی خوب اینم دیگه این بالا آقای متنبی بود هست. میگه عکل تو فاکتن و ما آ، عکل توفااکتن و ما این رو تو بحث اگر بلد باشید. پایین یا آشیه داره نگاه کنید یا آشیه دو داره اینو بخونم بالا متنبی رو یاپول و ان بن زمان، فرزندان روزگار، انن زمان من عم صالفه از عبت های گذشته جا او فی حداست ده اینها در جوانی روزگار آمدن به دنیا فسرهم روزگارمون اونا رو خوشحال کرد و نحن اعتیناه و وقد هرمن و ما اومدیم خدمت دنیا در حالی که خیلی خیلی پیر شده فلم یبقین ما یسر و نور پس یه چیزی پیشش نیست که ما رو با اون خوشحال کنه حالاگه ازا خورده سال متنبی گفته پس ما دیگه الان در دوران مردگی دنیا به دنیا آمدیم آه. دیگه میت هست خب بگذاریم این مثال آخری درست شد مثالیه که توی کتب نحوی تو باب مفعول مثال میزنند اونجا میگن اگر میشه عطف بکنی عطف میگیریم ها بنابراین میشه عطف کنی عطف میگیری مثل جئت و انا و زیدن جئت و و زیدن اینجا واو عاطفه است عطف میکنه زید رو به جای تای جئتو چرا میشه عطف کنی چون انا فاصله کرد اینجا عطف جایز ما هم عطف کرد جئت و انا و زیدن چون عطف اولاست واو عاطفه باشه اولاست میگه اگر عطف نمیشد، خوب خب مفعول مع میگیریم. مثل جعه تو و زیدن و زیدن اینجا نمی شده زید رو عطف کنیم به جای تای تو چون عطف بر زمیر مرفوع متصل جالز نیست مگر با واسطه زمیر منفصل یا و ما یا یه چیزی فاصله کنه یا زمیر منفصل فاصله کنه یا یه چیزی دیگه مثل که بگه جهتو امسه و زیدون جهتو امسه امسه ظرف فاصله که و زیدون یا جهتو انه و زیدون اینا تو نه خوندید درست شد که اگر بشه عطف کرد عطف می‌کنیم نشد عطف کنیم مفهول و بعد اونجا مثال میزنن میگن که گاهی اوقات نمیشه عطف کنی نمیشه مفعول مع به نمیشه عطف کنی نمیشه مفعول مع بگیری میگن اونجا باید فعل مقدر تقدیر بگیریم با قرینه فعل مقدر تقدیر بگیریم با قرینه مثل اینکه که این شعر رو مثال میزنن حالا من میگم که شما ببینیم تو نه و خونده باشید یه مقدار خلاصه انشاءالله به ذهنتون میادید یعنی درم قبارد باب مفعول و مهرتون نه براتون میدن یه شعری مثال میزنن مالی یک کسیز در مورد اولاغ خودش میده یه اولاغ مادهی داشته در مورد اولاغه میگه خیلی هم دوست داشته اولاغه شد میگه علفتوها علفتو با عین علفتوها تبنن تبن با ته دو نقطه یعنی کا علفتوها تبنن و ما ان باردان و ما ان باردان مصرع دومم حتی قدت قدت با قیم قدا صرف کنی زیر قدت مثل رمت حتی قدت هممالتن هممالتن با حی دو چشم هممالتن ایناها ایناها ایناها پس این طور شد اللفتوها تبنن و ما ان باردن حتی عطف و قدد عمالتا عينا میگه علفتو علف یعنی علف بهش دادن علف بهش خوروندم فعل و فاعل و مفعول اون فاعل اوله یعنی اون میگه من به علاقه خودم علفتوها خوراندم تپنن که کاه خیلی دوست دارنده یه تا میخورد که بشتادم و ماهن باردن و آب خنک. معمولا حیوان وقتی کاه یونجه میدن میخوره بعد روش آب میدن به او آب هم دادم خورد و ماهن باردن آب خنک. حتی تا جایی که قدت یعنی سارت. با جایی که گردید هممالتن هممال سیغه مبالغ هست حملت اینوهو یعنی چشمش عشق کنند هممالتن یعنی بسیار عشق ریز شد ایناها دو چشمش دیدید یه نفر یه بستنی میخوره یا آب خونک میخوره از چشمش عشق میاد آه خیلی خونک باشه میگه این خرر رو یه آب خیلی خیلی درجه یک و خونک بشتادن فرد جوری که همینطور از چشاش داشت عشق میره یعنی کیف کرد ف... فهمیدید چه رو حتی تا قدت عینا ها یعنی حتی تا قدت عینا ها تا جایی که دوتا چشمش همماله شد یعنی خیلی خیلی عشقیز شد اشک عشق خصا ما بحثمون سر چیه؟ سرمون اینه که, اینه که حالا شعر معنا رو فهمیدید سر اینه که این و معن باردن باردن صفت این معن نمیشه عطف کرد به جای تبنه. نمیشه عطف. چرا؟ چون اگه عطفش کنید به جای تبنن معنا این میشه اللفتوها یعنی خوراندم به او کاه و آب آب خوراندنی نیست آب نوشیدنیه عطف کنید نمیشه عطف از نظر معنا درست نیست چرا چون کسی نمیگه اللف توها ما ان. بلکه سقه توها ما تو به معنای خوراندم این برای آب بکار نمیره برای آب نوشاندن بکار پس نمیشه عطفش کرد از دجای تبنه. چرا؟ چون اگه عطف کنید میگن مهتوف میره میشنه جای معطوف و نهلی و اگه از جای مهتوف و نهلی معنام شه اللفتوها ما انباردن خب اللفتوها ما انباردن غلط درست نمیشه مفعولان معهم گرفت مفعولان مه هم درست نیست چه نمیشه مفعولان مع گرفت به که اگه مفعول و بگیرید باز معنا خراب میشه میشه علف توها تبنن و معن باردن این معه یعنی با هم یعنی علف توها مع معه معن باردن یعنی به او کاه به همراه آب اونم هم آب خنک یعنی مثلا که آب رو ریختم توی یه دونه سطلی کاه رو ریختم توش هم زدم تیلیت درست کردم دادم خریه خورد هیش که نمیخوره هیش خری، تیلیت نمیخوره درست شد اینطوره همش بزنن بهش کسی نمیده. نمیدن یعنی هم نیست قصد عطف ممکن نیست چون تو نمیتونه مفعول دومش ما انبار دن مشه. معیت نیست چون آب و کاه رو قاطی کنی خری نمیخوره اصلا ها پس اینجا باید چه کار بکنیم نه شد عطب نشون میگن به قرینه یه علف توی فعل برای ما انباردن یعنی اینطوری بوده علف توها تبنن و سغی توها سغی توی یعنی نوشاندن و سغی توها ما انبار یعنی خوراندن به او کاه و نوشاندن به او آب خوند نوشاندم به او آب خوننگ بچی شد حتی آخدت تا جایی که چشماش اش. خب این اگه یاد گرفتید خب اون شعری که الان من توی باب مفعول و تو توی کتاب ها هست و برای شما خوندم اجازه هست داشت چون سقه ای توها هست شد این همون اومده از روش کپی برداری کرده اینو درست کرده اکل تو فاکهتن و ماان این ماانو میگه نمیشه عطو کنی به نمیشه چرا چون اکل تو بر سر ما در نمیاد نمیگن اکل تو ماان چون معطوف در حکم محطوفان علاقی میریم ایش جای فاکهتن اکل تو ماان درست است. مفعول و مهم میگه نمیشه درست کرد. میگه چون کسی میوه رو با آب قاتی نمی‌کنه بخوره مثلا سیبارو خود کنه توی گاز آب قاشق بگیره دستش بخوره یا برد حالاد اینجوری کنه من ندیدم بخوره کسی آه. پس اینم نمی‌شه معم نمیشه پس بعد کرد بگید اینطوری باشه عکل تفاحه هتن و شرب تو بگید ما هم. یه شرب تو بعد چیکار کرد تعریف مثالش کمی از بوسکوپی دور برداری کرده اگه من اون مثال اون عربی شعر رو و اون مطلب رو نمی گفتم یه مقداری همشین بیمزه بود ولی اون خلاصه کامل اینو میکنه خود خب بگذرید میگه فعل عبانته ایجازون به حذف جملته در عبارت ایجاز حذف به حذف جمله از تقدیر و شرب تو معن ببین اینا رو هیچی چی توضیح نداده ها چرا ما اینجا مجبوریم شربت رو تقدیر بگیریم خب این من توضیح دادم با اون طرف. درش شما اگر این کتاب ها رو بخونید و اینجا بفهمی که بنویسی تو ذهنت بیاد که یه شرب تو اینجا محظف و دو اون دوزار نمیارزه. اره. اون چرا؟ چرا ت؟ اینکه نمیتونیم عطف کنیم نمیتونیم مفئول مع بگیریم. پس بنابراین مجبوریم فعل مقدر به غهل تو دربیر بگیریم اونم شررب تا این داستان کار است. من احساس میکنم خیلی قشنگ بیان شد و خوب گفتیم و شما منشالله خیر مطلب رو یاد گرفتید حالا بدیم سر اتناب اتناب اتناب و یتنب و این رو تو خیلی از کتب اصحاب هم میگن لغت مترادفشه اصحاب با سین و هی دو چشم. اصخب یوسف و اصحاب اصخب یوسف و اتناب چیست؟ این اول باید تعریف کنیم بعد که اتناب رو تعریف کردیم موارد اتناب در زبان عربی رو بگیم که البته هیچ فرقی نداره با زبان فارسی که چون ما داریم بیان میخونیم این تو بیان اتناب نیجاز مساواد تو فارسی هم هست تو انگلیسی هم هست تو ترکی هم هست فرق نمیکنه فقط واجه ها عوض میشه درست اتناب چیست و موازه آن کدام است محور بحث ماست یه یک دقیقه استراحت کنید یه فاصله ای بیفته. بسم الله الرحمن الرحیم تعریف اتناب رو نگاه کنید تعریف اتناب این بحث خیلی قشنگی ال اتنابو تو قاعده اتناب عبارت است یا ال اصحاب عبارت است زیادت و لفظ افضایش لفظ علال معنى. نسبت به معنا لفظ بیشتر از معنا مثلا مثال زدیم یک متر معنا میخواسته بگه دو متر لفظ آورده یا یک کیلو معنا میخواسته بگه دو کیلو لفظ آورده لفظ بیشتر از از این مساحت و این مساحت تقریبه به بشه معنا و مقصود کمتر از لفظ حالا هر کجا معنا و مقصود کمتر از لفظ باشه میشه اتنا یعنی یه نفر نشسته میخواد یه حرف بزنه دو ساعت شر رو میگه همون که اتناب نیست که نه اتناب اینه هنر اینه نه فائدت این که لفظ بیشتر از معنا شده منباب فایده است فائده توشه اون فائده اینو کرده اتناب فائده اینو کرده چه چی, چی؟ اتناب شو اون اینو کرده اطلاع این زیاده گویی برای فایده است ایست رو در نظر مثلا مثال بزنم والا یه مثال بزنیم که یه ذهنتون آمان خدا تو قرآن حضرت موسی رو که به کوه تور میاره به تور سینا میگه ما تل که به یمینه که یا موسی موسی این چیه تو دست تو کاسه توجه موسی اون چوب دستش جرق بود موسی این چیه تو دستت ندا شد موسی چیه تو دستت یعنی محبوب معشوق از موسی سوال کرد موسی این چیه تو دستت موسی جواب داد قال هيا یه اصایه یا یعنی اینکه تو دستمه اصایه اصایه منه بعد گفت اتوکه و علیه من تو راه رفتن و اینها بهش تکیه میکنم. و احوش رو به ها و باهاش میزنم برگار میریزم برای گوسفندانم، دارم چون میچرد. ولی یفی ها معارب اخرا. یه سری حاجات دیگه من رو همین برابرده نکنم مثلا اگه دشمن بیاد یا حیوان موزی بیاد گرگی بزنه به گله باش ازش دفاع نکنم مثلا قضام رو میبندم نکه این میگیرم رو دوشم و میرم حالا یعنی ازش فایده های دیگه هم داره خب خدا از موسا چی سوال کرد چیه تو دستت؟ ابن مالک توی شعر خودش میگه وفی جواب کیف زیدون قل دنف و زیدن استغنی هنها از آرف تو باب مبتدا خبر میگه میگه اگه یکی پرسید کیف زیدون؟ مگو دنفون مریضون دیگه نگو زیدون دنفون مبتدا اینجا مستغنی هستی ازش بخاطر قرینه ای که اون گفته زید چطوره تو میگی مریضه دیگه نمیگه زید مریضه زیدو هستم و زیدان استغنی هنها از عرفت چون قرینه هست و حسوش خب اینجا باید جواب میداد نوسا اصا همین ولی نگاه کنید مبتدار آوردیه. بعد دازه گفت اصای منه مگه خدا پرسیده بودین اصایی که هیه که قرینه داشتیم میتونه سعز کنه بعد دوباره ادامه داد جمله دراز حرف زد اتوکه و ها و احوش شبه ها علاقه نمی و لیفی ها معارب و اخرا. این زیادگویی اگه فایده نداشته باشه خلاف بلاوته پس اینجا حتما این اتناب فایده داشته این اتناب حتما اینجا مفید فایده بوده خب مفید فایدهش چیه؟ اینه میگن در جایی که عاشق در مقابل معشوق روزد و معشوق از او چیزی سوال میکنه محبوب از او چیزی سوال میکنه این سعی میکنه به قول خودمون بل بل زبانی کنه درازگویی کنه تا از مقام تخاطب از این که در حضور محبوبه و معشوقه لذت ببره و در مقام اون نطقش باز میشه ای این اصلا منظورش این نیست که این حال رو چی, چی میگه شاید اگه میتونست بیشترم حرف بزنه حرف نیست اینجا داره از حضور در مقابل معشوق و اینکه که معشوق از او توجه کرده و چیزی خواست محبوب داره از این مقام حضور استفاده میکنه و هم کلامی براش مهمه که او برگرده از این کلام هایی که این گفته یه چیز دیگه سوال کنه این یه دراز گویه دیگه کنه دواره اون همینطور لذت میبره از این حالا مثال بزنیم مثل اینایی که مثال برای تقریبه به ذهن میزنم مثل کسایی که تازه ازدواج کردن یا تازه نامزد هستن وقتی هم دیگه رو سوال دویست سوال از ازو سوال میکنه او چه کفش و اومد یا نمیدونی این کفش از فلان جا رفته بودم اینطوری شد میگم رفتم اون آقا اینطوری گفت بعد اینجوری خریدم یکی دید گفت خیلی قشنگه شلوم گفت به اون از این یه حرف نمی میبینی سه ساعت با دارن حرف میزنن خلا بعد کنن یا برن همه اینو یادشون میره چون اصلا دست نبوده که اینها گفت، بسین جان. حالا این اگر تو اوایل بقول خودمون آشنایی اینا اون بگی چه کفش خود، یار تازه خرید. دوباره بگی مثلا چه کلاهی قشنگی مال بابامه. اون فرداش دیگه اصلا کلم میزنه زیش میگن اصلا با ما حرف بزنید، از کارا جونه. مقام تقو ولی اگه مثلا 20 30 سال از عمرشون گذشت که با هم زندگی کردن و میرسه یه وقتی چیزی میپرسید رفشد خشنگه بیاره دیروز فرد خبینید لفائدت نه مثال براتون زدم که ذهنتون آماده باشه فایده باید داشت بگردی وقتی کلام لفظش بیشتر از معناست باید مفید فایده باشه تا بشه اتناب اگر فایده درش تصور نداشته باشه اتناب که نیستی چی خلاف بلاقته یعنی از درجه اعتبار ساقته درست شو پس اتناف زیادت و لفظ علمانه به فائدت و یکون به امورن یه سری امور باعث میشه که اتناب صورت بگیره با یه سری چیزها ایشون اموری رو میشمره. برست شد؟ آیا منحصر در این اموره؟ فقط؟ نه برست شد؟ نظام میگه و یکون رو به امورن ادتن با خیلی چیزها میشه منها موارد شاخصش اینه اونی که من توی قرآن مثال زدن هیچ کدوم این نیست خارج از این هست. درست شو؟ همون مورد حضرت موسی. بلکه با یه جملات اضافی و آوردن مبتدا و اضافه کردن اسم اتناب صورت گرفته درست شد این موارد یکی یکی میشه اینا موارد اصلی اتنابه مثال خودش هم گفته یکونو به امور ادت منها حالا یه حاشیه ای داره این پایین که حاشیه بسیار مفیدیه حاشیه بسیار مفیدیه میگه که ازالم تکن فه زیادت فایدتون اگر یه کسی لفظش زیادتر از معنا بود و فایده هم توش نبود فایده ای نداشت نگاه هم فایده خاصی توش نیست فه ازالم تکن زیادت فایدتون چی میگن بهش؟ سنمیت تطویلن به این میگن تطویل میگن کلامش دارای تطویل تطویل عیبه ها برخلاف اتناب که یکی از اقسام کلامه و در جای خودش بلاقته و معجزه سخنه تطویل ای عیبه مریضی کلامه شاخصش چیه اینکه لفظ بیشتر از معناس فایده نداره. حالا تطویل لفظ بیشتر از معناس فایده نداره، کیبش میگن تطویل. میگه انکانت از زیادتو غیر متعینته. اگر زیاده متعین نباشه. یعنی نتونیم قسم بخوریم این زیاده یا این. میدونیم یه جایی زیاده. اما کدومش زیاده مثلا که میگیم فلانی دروغ و چاخان تو کارشه خود دروغ و چاخان یکی است بگو فلانی دروغ تو کارشه چاخان تو کارشه این دروغ و چاخان م... کدومش زیادیه؟ م... میتونه دروغ زیادی باشه میتونه چاخان زیادی باشه مشخص شده نه فایده چیه, چیه؟ انکانت امکانت از زیاده تو غیر متعینه فایده توش نباشه دروح. و هشون و اون زیاده رو بهش میگن هشون هشون انکانت متعینه اگر معلوم باشه معلوم میگو این زیادی مثل اینکه میگه دیروز گذشته خیلی بر من سخت دیروز گذشته پدر منو در اون دیروز گذشته یعنی چیه مگه ما, ما دیروز غیر گذشته هم داریم دیروز ها همشون گذشتن نبیرم گذشته لغت زایدی و دیروز پدر منو در اون دیروز منو خسته کرد حالا مثال زدم کن متعینه که کدومش زایده کدومش زایده در دیروز گذشته گذشته این رو بهش پس اگر زیاده معین نباشد که کدوم کلمه است میشه تطویر اگر زیاده معین باشد میشه هش حالا مثال بزنیم ما مثال یک دو تا همینطوری برای تغلیه ذهنی شما فارسی زدیم مثالش بعد تطویر تطویر مثل این کما بی قول شد داد مثل این که در قول انتره شما اینطور طور میبینید شعر انطره از معلقه ایشونم است. میگه هییت من انتللن این من بیانیه است. یعنی هییت تللن یعنی از جهت تلل بودن تلل جمعش اطلال تونون آثار باقی مانده از محبوب محشود خوییت یعنی درود داده شدی، درود بر تو باد دعا میکنه درود و سلام بر تو باد از لحاظ تلل بودن به آثار باقی مانده از محشوق ای آثار باقی مانده از محشوق از جهت تلل بودن درود و سلام بر تو باد خوییت هم این تلل. تقادم اهده تقادم یعنی قدومه عهد یعنی دورانش تقادم اهدو صفات تلل جمله برداشت نکرد تللی که آثار باقیمانده‌ای که تقادم اهدو خیلی قدیمی است عهد اهدان بسیار قدیمی است یعنی خیلی آثار باستانی است از جهت کهن بودن از جهت آثار کهن بودن بر تو درود و سلام باد ای تلق. بعد میگه اقوا شرا فقاد مهدوهو چون اقوا و اقفر بعد ام ملحیسمید بعد ام ملحیسم یعنی بعد رحیل ام ملحیسم رحیل یعنی کوش کردن ارتحال اقوا و اقفر این دوتا فل به یک معنی است یعنی خوش و بی آب و علف شد اقوا و اقفر اقفرت الارزو اقفت الارزو یعنی خوش و بی آب و علف شد هیچ اقوا و اقفر یعنی از آبادانی به دور ماند خشق و بی آب و علف شد کی این تلل بعد امه الهیسنی بعد رهیل امه الهیسن بعد از اینکه کوچ کرد ام حیسم کنیه معشوق اوست. بعد از اینکه ام الهیثم ام الهیسم از اونجا کوچ کرد دیگه اونجا رنگ آبادانی و ندید ندید بی آب و علف شد خب این اقوا و افرا یعنی خشک و بی آب و علف شد انگال گفت خوش ک بیا آب شد و خوش گفت بیا آب شد بعد اون مل حی می. تو تا اغوا و اولن یکیه مثل اینکه که بگیم قعده و جلسه زی رو و قعده و جلسه بگیر؟ یکی کدومش زائده دیمیه. میتونه بشه ارب بعد اون مل حی زمین فر بعد اون مل حی تو توش به یک ن کدو من نمیدونیم این اتناب داره نه بلکه این تطمیل داره زیادگوی بدون فاید است بعد امه لحیسمی یعنی بعد رحیل امه لحیسمی یعنی بعد از اون ام... امه لحیسم از این کلل یعنی از این محل زندگی قدیمی رفت دیگه اینجا کسی نبود جارو پاروش کنه امه لحیسم خیلی نزیف و زن خانه بود دیگه کسی اینجا نبود اینجا شده خرابه خرابه و بیا و علق شده بعد از رفتن و به حیصه وله هشت هشت مثل چی؟ مثل این کمافی قول زهیر ابن عبی سلمان مثل قول آقای زهیر ابن عبی اینم تو معلق است. جالبه تمام معلقات معلقه امروال توش موارد غیر بلاغی هست معلقاتی که به خانه خدا آبیزون زده کرده بود، بودن قانون اساسی با قول خودمون دیگه تمام هنرشون بود در بلاغت معلقه امروال غیست توش اشکالاتی هست مثل مستشدراتون که این کلمه دارای تو بحث تعریف بلاغت بهتون گفتم قدای مستشذرات مستشدراتون علال اولاد دارای تنافر حروف و بعض موادی دیگه ظاهر میبینیم اینطور انتره اینطور بقیه هم همین اشکالات توشون هست اما عجیب هست هر کاری که اینا رو ما نبارتم. خودشون هم اینا رو میفهمیدن چون زشتیه که کسی زشتی رو یاد نمیده کی یاد داده که مثلا فرز یک نفر مادرش بهش یاد میده که مثلا چهره زیبا کدومه میبینن این میگه می این زیباست هم میگه این چه ز زیبایی اینکه صدای کلاق زشته صدای بول بول و قناری قشنگه به ما یاد دادن نه موازن صدای بلبل بول قناری خوشمون میاد صدای کلاق و علاق بدمون میاد این لعن کلال اصوات نسای طول همین همین طور هم سخن سخن مجخص شد برای تو اونها زیبایی سخن رو به شکل فطری درک میکردن لذا توی کلمات و عبارات خودشون یک خلل و ناموزونی میدیدن حالا گرچه اسمشو بلد نبودن اتناب و نمیدونم هشت و تطمیل و از اینجور چیزان اینا رو بعدها ما برای خاطر اینکه سخن رو جراحی کردیم یاد گرفتیم درست نام نامگذاری کرد ولی اونها اینو درک میکردن درک میکردن مثل کسی که درک میکنه این غذا خوشمزه است میخوره مینه خوشمزه میگه به به به به باری خوشمزه است کلا دیگه میاد تحلیل میکنه میگه این به خاطر اینکه ادویه‌اشو به اون موقع ریخته گوشتشو اینجوری سفت کرده نمیدونم دونم سبزیجونیشو این کارو کرده و دیگه این میفهمه ولی هردو یه چیز دارم میگن هردو میگن این غذا خوشمزه یا هر دو میگن این غذا بدمزه است اون میخوره میگه بدمزه است یکی اگر هم بخوره تحلیل میکنه میگه این به این دلیله که این اتفاق توش افتاده اینطوری شد همینطور موارد دیگه نسا فقط قرآنه که وقتی آمد اینا همه دستاشون رو بالا چی گشتن ندید چیزی توش بیدانه کنید و واقعا هم پیدا کردن به خاطر همین ن بود که قرآن می گفت انکان توفی ریون به مانظرل نالابدنا ف تو به صورت مثل اگه شما فکر میکنید که این قرآن از جانب غیر خداست شما که خوتون عرب میدونید صاحب به شعر این اینداه نصرره شما یه قرآن درست کنید مثل این یه بی قرآانی بیاید نه اینکه نکردند نتوانستند مفتزع شدند حالا نگاه کنید توی طعش که زیاده آن متعینه کما فی قول زهیر ابن ابی سلمه میگه و اعلم ان ید میگه من معلومات امروز رو میدونم یعنی اون چیزایی که ربط به امروز داره رو میدونم و, و یعنی و عرف و. علم الیوم دانستانی های امروز رو میدونم به یعنی نگزم به مثلا نهار چی خوردی میدونم صحبون چی خوردی میدونم کنومت میدونم و عالم و علم الیوم ول امسه الیوم. یعنی و علم امس. موارد دیروز هم ازم بپرسید میدونم یعنی گذشته بگی دیروز چه خوردی؟ میدونم دیروز کیو دیدی؟ میدونم. یعنی من امروز رو میدونم گذشته رو هم میشنوزم ولی امس قبله اینجا شاید میساله و دانستانی های دیروز که قبل از امروزه دیروزی که قبل از امروزه مگه دیروز بعد از امروز هم داریم یا دیروز همراه امروز هم داریم همه دیروزها قبل از امروزه دیگه شد یا نه؟ الان کلمه قبلهو اینجا چیه؟ زاید میدونی کلمه متعینه میگه ولیکن ننی ولی من ان علم ما قدن از دانستن آنچه که در فردام خواد اتفاق بیفتید امن امن اشباه شده شده امین امن یعنی جاهل صفت مشابه. است ولی من نسبت به آنچه که در فردام خواد اتفاق بیفتید نمیدونم یعنی علمت دیب بگید میگه امروز رو میدونم دیروزم میدونم دیروزی که قبل از امروزه ولی من از فردام خبری ندارم که فردا چه خواهد شد شاهد سر چی بود؟ سر اینکه قبل قبلهو لفظیه که توی لبارت زایداند و متعینه این بیت بیت قبل این هشف است چون زیاده بدون فایده متعین است معلوم است اون تطویل است چرا؟ چون زیاده بدون فایده متعین نیست نمیدونیم اقفرت رو زاید بگیریم یا اقوار رو هر دو صلاحیت رو دارن هیچ بر دیگری ترجیح ندارد خب ما اتناب رو فهمیدیم و در مقابل اتناب که هش و تطویل هست اون رو هم بگید فهمید حالا از موارد اتناب چه چیزهاییست یک دو سه می شماریم شو یک دو سه چهار پنج شیش هفت مورد رو ایشون بیان میکنه. کنم یک ذکر الخاص بعد الام ذکر الخاص بعد الام خاص بعد از عام ذکر بشه. اون این فایدهش چیه؟ لطنبیه علا فضل خواست برای اینکه که میخواییم بفهمونیم که این خاص یه فضیلتی داره یه جایگاهی داره تنبیه مخاطب رو بکنیم بر فضیلت اون خواست یعنی اون یه جایگاه مخصوص به خودش رو داره تافته جدا بافته است مثل چی نگاه کنیم تنزل الملائکتو و روح فیها تنزلل ملائکتو و روح و فیها مثال خود کتاب ها تنزلل ملائکتو و روح و فیها تنزلل بوده تتنزلل یه تا حضب شده. تنزلل یعنی تتنزلل یعنی آروم آروم پایین میان چی الملائکتو الملائکه الفلام داره جهم هم هست یعنی همه یه تمامی ملائکه یواش یواش پایین میانده و روحو این و روحو عطفه به جای الملائکه و همچنین روح روح الفلام هم داره از روح جبرئیل است جبرئیل همین همه ملائکه میآیند پایین یواش یواش در لیلت و غل. و روح هم و جبرئیل هم فیها، فیهامو تعلق و تنزلو یه یعنی در لایلتر. اون در همه ملاعی و جبرئیل یواش یواش در لایلتر واد پایین می‌کند. بروسه. همه ملاعی و جبرئیل یواش یواش پایین میان ملائکه و جبرئیل پایین میان اگه گفته بود و روح نبود شامل جبرئیل نمیشد چرا جبرهیر ولی چرا او روح رو تنهایی ذکر برای خاطر که بگه این تافته جدا بافته است این یه عظمتی دارد که انگار معادل اونهاست باید بهش حد مثل این که بگه همه علماء تشریف آوردن و حضرت آیت الله فلانی هم نشون میده این تافته این یک کسیه که وقتی همه علما بگه اروح جبرئیل علیه السلام یا مثلا مثل این آیه میگه حافظو علس سلوات حافظو علس سلوات یعنی چی؟ یعنی محافظت کنید مثل منام علس بر نمازهای خودتون از سلوات یعنی نمازهای پنجبانتون محافظت کنید بر نماز های پنجگانتون یعنی سر وقت بخونید با تو بخونید نمازاتون درست بخونید بشت باشید باشه و علیس بعد میگه وسلات الوسطا، وسلات الوستا و اون نماز وسطی وستا اون رو حواظتون چه اکثر هم میگن نماز و وسط یعنی نماز و زهره هست چه معمولا انسان مشغول میشده به کارها و مسائل خودش میمونده تا دم و آفتاب گروه حالا آیا اون موقع میخونده از دست در میرفته گفته کار و زندگی شما رو مشغول نه چون اونها صبح ها که بیکار بودن سرزود هم از خواب بیدار میشدن نماز صبح رو شبه هم همینطور و معمولا مشکل در روز بوده گفته نماز های بعضی از مفسرین میگن هیل و سلاطه الوستا برای هر کسی ممکنه فرق کنه یکی نماز صبح براش میشه نماز وستا و خصوصا اون نمازی که برای تو افصله یعنی سخته بعضی گفتن وستا از وسط به معنی فضله یعنی نمازی که فضیلتش بر تو بیشتره چرا؟ بده این که تو اون برات سخته حالا نماز و صبح نماز صبح میشه مرد تو وسته مغربش مغرب حالا بگذاریم این وصلات الوست داخل در از سلواته. و اینجا به طور جدا ذکر شده اینو بهش میگن ذکر خاص بعد از آمی حالا نگاه کنید تو بخص عرب تا که این ما سبقه معنیل ایجاست در گذشته تو بحث معنای اجازه رو فهمیدید و نورید دو هنها ان نشه لکه نوع ان آخره و ما میخواییم اینجا برادی نوع دیگری رو بیان کنیم من الاسالی از اسلوب سخن سفن یقابل و یزاد ها که با اون مقابل از و متضاد درست شد؟ فتزید و على الفاظ و الالمعانی پس در این الفاظ بیشتر از معانی است نقر از این بلاغی اونم به خاطر یه نکته بلاغی مثال المثال العوله. نگاه کن به مثال اول تجد خواهی یافت رفت ار روح فیه زایده خواهی یافت که لفظ روح در اینجا زایده چرا؟ لعن لعن معناهو داخلون فی عموم لفظ المذکور قبل. زیرا معناش داخل است در عموم لفظی که ذکر شده قبلش و ها و و اون ملاحکتی که جمع است و هل افلا و انظر ثانی نگاه که حالا تو مثال دوم شد؟ مثال دوم چیه برو ببین ذکر رو آم بعد الخاص ذکر آم بعد از خاص اول خاص رو بفته بعد آم باورده این فایدش چیه؟ این دو تا فایده داره یک لعفادت الاموم برای خاطر که اموم بشه و کسی جا نمونه لعفادت الاموم دو مال انایت به شهرن الخاص و خاص هم مهم بوده به شکل تافته و جدابافه اول ذکر شده این که اول ذکر شده درست شو. خاص این لشون بده انایت ویژه به اون خاص اینکه بعد آم را آوردیم درست شد این نشون میده میخوایم کسی از قلم بگید نیست کسی از قلم بگو نیود. مثل مثلا که عزت ابراهیم میگه ربنا اغفر لی وللوالدیه وللمؤمنین و لمؤمنات يوم يقوم اله اگر از اول گفته بود رب اقفر ربنا اقفر للمؤمنین و المؤمنات که لی و الوالدین میشد دیگه یا همه مؤمنین و مؤمنات رو بیاموز شامل خودش و پدر و مادرش هم میشد ولی انگل گفت خدایا بر من و بر پدر و مادر من و بر جمیع مؤمنین و مؤمنات ببخش اینجا اون لی. و لغا لدهیه مخواد بهشون بشه که به تنهایی ذکر شدن و اون للمومنین و مومنات هم آورده که خلاصه همه داخل در رحمت و مغفرت و دعای او باشند. ببینید ریگه ختم از زیرش می نویسن از طرف حسنگولی، حسنگولی حسنگولی تقی نقیه کیکی بعد می و جمیع وابستگان سببی و نسبی. <تصفيق> تیکی آخرش واسه میوزد با توانگرد اگه پسر اموی خاله ایداری کسی میگو ما همه رو نوشتیم شما تو اون جمعیه وابستان و اگر از اول می نوشتش از طرف جمعی وابستگان سببی و نسبی شامل همه میشد دیگه نیاز به اونا نبود اونها رو به طور ویژه زکر کرده بقیه هم اگه یکی کس اومد بگو دیگه ذهنمون نرسید دیگه گفتیم آخرش دیگه ا ذکر عام بعد از خاص نه الاموم معل مع ال عنایت به الخاص مثال کتاب رو نگاه کنید مثال خودش قال تعالی رب اغفر لي من من آیه دیگه مثال زدم این آیه دیگه رو مشابه رب اغفر لي و الوالدین ول من دخل بیتی مؤمنن مؤمنن حال است از برای فایل دخل ول المؤمنین و المؤمنان اگر گفته بود رب بقفر للمؤمنین و المؤمنات شامل لی ول والده ول من دخل بیتی مؤمنن می شود. اگر اون ول المؤمنین و رو نمی آورد عمومیت نداشت دعا در حق همه نشده بود خب حالا وقتی خاص رو اول ذکر میکنه بعد آم میاره دو فایده میشه یکی اینکه که به این خاص هست که به طور ویژه ذکر شده دو با اون آم قصد عمومیت داشتیم میخواستیم آم بودن رو هم داشتیم ولی المومنین اول مومنین نگاه کن توی بحث کتاب میگه که ونظر به مثال الثانی نگاه کن تو مثال دولن تجد انالف زلی ولی والده یه بعدم ولی من دخل بیتی مؤمنن اونم هست تو اینجا تو اون مثال که من زدم اون ولی من دخل بیتی مؤمنن نیست میگه رب نقفر رب نقفر سور ابراهیم رب نقفر لی ولی والده ی. ول المومنین و المومنات یوم یقوم حساب خب این آیه دیگه است تو مال ایشون لی و والده و ول من دخل بیتی اینا زایده عیزن چرا لدخول معناهو فی عموم المؤمنین ول مومنات داخل داریم درست شوار. اگر از اول همون للمومنین ول مومنات رو میگفت دیگه نیازی به اینها نبود حالا چرا آمد ذکر آم بعد از خواست کرد یک لفادت العموم یا آم ماورد دو خواست رو چرا زود ذکر محل انایت به شعن خواست محل انایت متکلم با این که متکلم یه نظر ویجه ای داشت به شعن و جایگاه من خواست که اون رو به عنوان تافته جدا بافته این دو مورد ذکر خاص بعد از عام، و ذکر آم بعد از خاص دو مورد از موارد اتناب است فایده هاش چیه؟ فایده گفته تو اولی لتنبیه علا فضل خواست تو دومی بگید لعفادت لعوموم معلی انایت به شنل خواست سه و چهار و پنج و شیش و هفت بگذارید بماند انشاءالله برای جلسه بعدمون که بحث اتناب رو میخونم و کل مورد علم معانی انشاءالله تموم میشه و امیدوارم که این مطالبی که عرض میکنیم اینها برای شما به باشه که بتونیم استفاده کنیم چقدر ما داریم داریم همه چیزایی رو که باش حرف میزنیم میگیم و میفهمید اون از خیلی کلام برای ما زیبا میشه و خیلی چیزها را از عبارت میفهمیم فقط صرف یه معنای کلی درک کردن نیست بلکه اون زیبایی های سخن رو هم درک میکنید موفق و باشید انشاءالله در پناه خداوند سالم و موفق و پیروز باشید انشاءالله تا جلسه بعد همه به خدای سبحان میسکرم حتما مطالعه کنید مباحث رو اینال مباحث شیوه است. به درد زندگی شما هم میخوره و من هم سعی میکنم که به دونهی بیان کنم که هم راحت خوشه هم درد کنید هم چیزی کم و کسر نداشته باشه الله حالا علا نبی نواله تاهرین و السلام علیکم و رحمت الله و برک